بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد حديث غرر بود که کل امتی میاد خلون به جنته الا من أبا. ما بحث اثر ابن مسعود رو داشتیم در صحیح ابن مسعود زنی میاد نزدش من شنیدم که تو لعنت فرسادی به کسی که ابروی خودش رو برداره نمس بکنه چطور کسی میگه که خدا لعنت نکرد لعنتش میکنین گفتم من چرا لعنت میکنم کسی که خدا و برو بخون پیداش میکنیم رفت قرآن کن اون زن اومد گفت که من ندیدم توی قرآن جایی بحث نمس و کندن ابرو باشه گفت که دوباره اومد نزدش گفت که من ندیدم گفت که اگر میخوندی میدیدی برو دوباره بخون خون دوباره اومد بعد میگه زنه بهش میگه کجاست من خسته شدم از بس که دنبال گشتم گفت که مگه نخوندی فرموده خدابند و ما آتاکم الرسول فخدو و ما نهاكم این صحابی، مسعود، این استدلال میکنه. از اطلاال رو خاص میکنم میگن که این خاص جهاد بوده و غنیمت بوده و از این مسائل خیر اعببرا بعموم بهعممونمللابللا به خصوص س خواه کلی در شرت درست جاهایی دلالت قرینه دلالت میده که ععببرا بخصوص به خصوص س خدا اص تخصیص ولی اصل اینه که برای همه هم یه چیزی که خدا میگه که ننگوشش و سرزنش میکنه به یهود ما هم همونطور اگر اون کارها را انجام ببدیم ما هم نوکرش سرزنش میشه. اینجا ابون ممسئ استاصلال میکنفرموود خدام اما عتامونرسروفه خدا интиси ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд мо бояд анҷом дидем. мо манна хакум анҳум фа инта хусидагм би анҷом нади анҷом надиш. вақти ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дастӯр би як кор меде ва бад мо сарфичии мекунем анҷомш намедием ин фעל мо ин сарфичии мо асиом мост ки инҷо расулуллоҳ алайҳи ва саллам ишора ба ин мекунад кулл уммати ясқӯнуна лл-ҷанната илло ман در سیرات رسول الله صلی الله علیه و خودش نخواست وارد بهش بشه بهش مضمون اینو کرده خدا تظیم کرده بهش به کسی که از رسول خدا اطاعت بکنه کسی نخواست اطاعت نکرد این لیاقت بهشت خدا رو نداره باید به با اندازه اون گناه و اون عصیانش باید تابونش رو در جهنم پس بده دو وجه داره این عصیانش یک وجه اصلا دیدم من محمد رسول الله صلی الله علیه و شهادت دوابر اصلا دینش قبول نداره بی خالد مخلد در جهنم کسی نه در فرمانی در دستوری در مسئله مخالفت و سرپیچی میگه امر رسول الله صلی الله علیه و که خداوند در قران میگه فليحذر الذين يخالفون عن امره من ان تصيبهم فتنه و يصيبهم هم الیم بر حذر باشن اونایی که از امر و دستور رسول الله صلی الله سرپیچی میکنن اینکه دوچار فتنه در دنیا باشن و یا عذابی در نا در آخرت فليحذر بر حذر نگفت در یک مورد دو مورد سه مورد جایی که امر دینی است مساله دینی است برحذر بو مؤمنين برحذر بو برحذر أثر في شكادنا بسرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم رئ مسلم بغير حق ليهرق دمه رواه البخاري قال شيخ الأسلام رحمه الله قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية او وطية او غيرهما من كل مقاالفت لمجاء به المسللو. او غبول الناس إلى الله ثلاثح مبز ترین مردم پیش خدابان سفراً م سفراً. اولین شخص که مبغزه پیش خدابان ملشهد ملشد در حرم ملش در حرم كیه ال الحات در حرم گفته شده قتل و پشاره گفته شده انجام دادن گناه هاست امام متبر میگه همه اینها شامل میشه چی میخواد کفر زندقه باشه بدعت باشه چی میخواد گناه و معصیت باشه همه اینها شامل میشه چنانچه در تفسیر فرموده خداوند میگه یور اومن به بالحد بالظلم نذقهم من عذاب الیم یعنی بخواد در حرم نه اینکه در محدوده مسجد حرام نه حرم اونجایی هست که ابراهیم علیه السلام تحریم کرده مکه مشخصه حدود حرام مکه و اون حدود حرمه مدینه که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از خدا خواست که حرمش بکنه بین عیر و تو دوتاکوهای عیر تو که حرمه در اونجا کسی که بخواد جنایتی انجام بده گناهش چندی مرابره به خاطر همین از حد یه خلافه راشده بود که عقوبتی که بر کسی که خلاف میکرد در حرمین عقوبتش رو بیشتر و تشریجش رو بیشتر بود و اون حدی که برش اجرا میکردن قویتر و شدیتر بوده. بس این аввалиш аввалин касо ане ки мабруза نزد ходованд ва муфтақин фил ислами суннати ҷаҳилия суннати ҷаҳилия дар ഖуръон ба иншора шудааст асл дар бораи занон ходованд дар ഖуръон мегӯяд ва ла табарраҷна табарруҷ ал-ҷаҳилияти ал-аула табарруҷ ал-ҷаҳилият табарруҷ ал-ҷаҳилият чи буд ки кашфи аурат мекарданд меӯвадан тавафва ходо мекарданд бо кашфи аурат чизе ки ходо ҳаром карде буд ба занон берунш букунанд берунш سر برنه می اومدن طواف خب خداوندا من که از این تبرج جاهلیت از اون فعلی که مشرکین برخلاف تدی اسلام انجام میدادن شرع امتی حرامش کرد شر حرامش کرد امام محمد وهاب کتابی هم داره در بحث جاهلیت تقریبا 130 بابه. فکر کنم اگه اشتباه نکنم خیلی از علما مثل علامه آلوسی شرع توضيحش داده اون مسائلی که برمیگرده به جاهلیت و امت اسلام انجام میدادن یکی از اون ها جاهلیت رفتاری و سلوکی همین تبرج جاهلیت گفتم زینت و آرایش کردن زنا، حد زدن زنان، حد بزنن برن بیرون. که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن دونه زنیکه عاتب بزنه بره بیرون. به مشوام مرد نامحرم بخوره. ابروش بکند، اینا از سنت‌های جاهلیته. جایی اومده نسبت پیروی کردن از کتاب که اینجا میتیمی رحمه الله بهش اشاره اشاره میکنه ای شخص دون شخص کتبی و اتباع و پیروی از اهل کتاب در اون چیزی که خصوصیت اون اومده از اون چیزی که خاص قوم اون قوم اونمللت مثل جش گرفتن سال میلاگ ابتدی سال میدادیکریتس یا جش اتولی که از هددی نصاص وصللاصل اللهتنمان الله برحزل منلكاتعا نن من كان قبل حذظب الكذتی بالخدة. وجب وجب شما از اوم های پیشین پیدای میکنید. تا اگر لو دخل و دوش راقابلبل دخلت مده از سوراخ سوثماری اوننا وارد میشن شماوارد میشه. این اشاره بچیه اشاره به انحراف مسلمان ها و رفتن به سوی جاهلیتی که زب جه جاهیت از جهلو مده. جهلی که مععرضت باچی داره مععرضت با حی پامبران با علم که پیانبران اووردند. اون روش مخالفی که با حدی و روش اسلام اون جاهلییت. مثلا مهاجین انصاف مهاجرین را خدابن اسمشون گذاشت مهاجرین خاطر هجرتشون از مکه من اين. انصار را به قطر انصره دینش اسمشون گذاشت انصار ول مهاجرین ول انصار خب وقتی که یک اختلافی پیش میاد بین صحابه بین انصار و مهاجرین مهاجرین میگن شما جمع بشین یه طرف انصار میدن یه طرف شعار میدن مهاجرین شعار میدن انصار رسال الله زال imagلا که این حرف رو میشه به نوراد بشه میگه ابد دعو الجاهلیت وانا بين ظهريكم ظهرانيكم دعوای جاهلیت قوميات گرایی ملیت گرایی من ایرانی ام اون پاکستانیه اون هندیه ملیت گرایی ملت زدن و ملیت گرایی و دم از نژاد و عرق و اینا عربن ما عجمی ملیت گرایی میخواد باشه حزب گرایی میخواد باشه خدا نمیکنه از تعصب و تشیع نسبت به یک فرقه، یک باند، یک گروه که خلاف اسلام چون اسلام آمده ما رو با هم دیگه جمع بکنه نه که ما با هم دیگه دشمن باشیم. چون لازمه تعدد احزاب، تعدد قومیات، تعدد عصبیات قومی لازمه اش عداوت بغض و کینه و دشمنی با هم دیگره شر اومد، دین اومد، این امر را مبغوظ دونست همونطور که اینجا در حدیث داریم ستا چیز مبغوض یکی از اون ستا چیز ها چیه؟ یکی از اون تا چیز و مبتغم فر اسلام سنت الجاهلیه کسی که در اسلام سنت جاهلیه بیاره و زندش بکنه در اسلام سنت جاهلیه می گفتم چی میخواد از فرصبات قومی باشه چه از رفتار و منش های رفتاری باشه چی میخواد فکر باشه افکار جاهلیت افکار عرسو سقرات بخواد زنده بکنه در د اون افکاری که معارزت داره با دین پیانبران معارزت و مخالفت داره با دین اسلام اینا همه سنت های جاهلیته تحقیر کردن تعنه در نسب زدن اینا شعبه شعب های جاهلیته خدا بغضش داره بغض شخص و بغض فعلش روزی عبوزه رضی الله عنی ببلال بیگه ابن سودا ای پسر هون زن سیاه یعنی خب رسول الله صلی اللہ علیه وقتی که این حرف را میشنبه از ابو ذر رضی اللہ عنه خشکی میشه از باب عزباب توبیخ و نکوهش به ابو ذر رضی اللہ عنه میگه میگه که شعار جاهلیت دعوی جاهلیت و من زندم اون سنت جاهلی را زنده میکنی وانا بين و من زندم و به دعوی جاهلیتی و این بین او کن و کما قال صلی اللہ علیه وسلم اصلا ناراحت میشه سشکیم میشه چرا ناراحت شد؟ چون اینجا یه نوع نجات پرستی بود یه, یه نوع برتری دادن و حق به جانب دادن یعنی خودش رو برتر میدونست بهتر میدونست اینجا بود که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم معاذ را چکار میکنه؟ نکوهش میکنه سرزنش میکنه بحث جاهلیت خیلی بحث گستردهی هست گفتم یعنی این جاهلیت چها در غفتار بیا چها در تعصب مذهبی شاید بیاد شاید در تعصب سیاسی بیاد به یک شیخی آلمی بیاد اینا همه تعصبات شیخ بکر بوزرد کتابی داره به اسم حکم الانتما حکم انتما منتمی شدن به احزاب و گروه ها ما بحث گروه های دنیاوی نمی کنیم انجامن خیریه نیستا چون گروه، بان، دسته، حز جماعت اینا همه یک معنی متراده که داره انجمن هم یک حزب یک گروهه ولی خب انجمن خیریه به مثلا برای امر دنیاست که فقره را پیدا بکنن و حق و حق از اموال زکاة به اونها بدن و صدقات و رسولان هم گه انتون معلوم برو دنیا کن بحث دینه یک گروهی خودشون را در دین از مسلمان ها جدا بکنن به اسم اسلام و خوبتش خاص خودشون باشه یا به اسم احباب یا به اسم هر اسمی بخواست باشه این از احباب ماست یعنی غیر از این دیگه حبیب ما نیست، محبوب ما نیست بخواهم در اسلام بانبازی بیرون بیانیم و تعصب به اون بان داشته باشیم به اون گروه داشته باشیم اون... حالا گفتیم شیخ بکر عبوزه چار دسته تقسیمش میکنه میگه یک جا این تعصب رفتاریه اونست تصوف، یکی قادیانی، یکی گیلانی، یکی نمیزن تیجانی چه خبره؟ هزار تا شیخ طریقت هر کدوم برای خودش بیعد میگیر طرفدار داره هوادار داره برای خودش این برای خودش یک قبر و مزار داره اون برای خودش یک قبر و مزار دیگه داره خوبه این جاهلیته همون کاری که جاهلیت انجام میدادن که جاهلیت اون مشرکی را زنده کرد با همین کار با همین تعصبات در شرک اکبر افتادن توسل به مرده و جاهلیتی دیگه توسل به مرده و قبر و به ذریعه و تبرک به اون و ذب به غیر خدا و, و اینا جاهلیته مبروز نسبت به با چی بوجودم با این طریقات بوجودمت از رفتار شدو شد ترف با اعتقاد این نوع انحراف نوع جاهلیت نوع دیگر اعتقالیت اعتذال و تجهم و اشعریت و ماتردیت و ارجال و ترامیت و کلابیت و همه این فرقه ها چه کسانی که عمل و از ایمان خارج کردن چه کسانی گفتن ایمان تمو زیاد نمیشه چه کسانی که گفتن خدا نمی‌دید و نمی‌شنود و چه کسانی که اومدن و علم کلام و فلسفه اومدن نصوص قران و سنت تحریف کردن گفتن خدا بالای عرش نیست و تکفیر کردن کسی که گفت خدا بالای عرشه همه اینها چیه اعترافات فکری ما گفتیم گفتیم سوال که مطرح میشه اینه آیا رسول ما صلوات الله علیه و سلم معتزلی بود اشعری بود فکری ایداش در مورد خدا اینطوری بود یک دلیل شما پس این دومی جاهلیت و تعصب فرقه‌ی دروی دو سومیش مذهبی فقیه فرع حنفیات شافعیات ولی جایی شده که دشمنی شده به جایی رسیده که در صالقه، صالقه در ها در 80 سال قبل 90 سال قبل در حرم یه طرف نماز می‌خوندن شافعی‌ها یه طرف مالکی‌ها یه طرف حنابلی‌ها یه طرف همشون تابع هم قرآن و سنتن ولی هیچ کدوم همدیگر رو قبول ندارن تا جایی که احناف می‌گفتن زواج با شافعی‌ها حرام و شافعی‌ها می‌گفتن ازدواج با احناف حرام این چیه تعصب مثلا میری شما بلیوچستان برو پاکستان برو مسجد احنا آمین میگون نگاه چپ چپ میکنن و اهل حدیث اومدن یا پاد بپاش چسبی نراحت میشه خشلی میشه چرا پاد چسبی سلفی اومده تو مسجد ما این چیه تعصب عصبیت چهارم حزب سیاسی و گروه سیاسی اون چیزی که شد و میشه در کشورهای اسلامی مثل فلسطین حماس این اینم این میگه اونا که دارن این میگه اینا خوارجن این میگه نمیدونم اینا فلانن اون میگه فلان اینا اینجوریان هم دیگه را میکوشن تا جایی که حماس زدن مسجد ابن تیمیه کلا به خودشون سلفی اونجا جمع شده بودن برای جهاد با اسرائیل زدن مسلمانا یعنی خود حماس زدن اون مسلمانایی که توی مسجد ابن تیمیه بودن و به بمباران رو رگبار بستن کله تمامی کسانی که توی مسجد بودن رو کشتن این محموده یه که داعش میکنه تو آره و تو سوریه نه جاهای دیگه اسارت میگیره مسلمون اهل نمازی شخص میاد رو سر میبوره شخص میاد رو سر میبوره با قاقو پدرش چیزم از دین نمیدونه جاهله این دعوای جاهلیته این دعوات کتورانه هست که بصیرت توش نیست دینش و علمش توش نیست گفتند در وصول در بس بهمنی امرخون من الدین کما امرق السهم من الرمیه مرق میکنن از دین خارج میشن همچنان که تیر از خارج میشه پس اینها همه معارض و مخالف حدی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سوامی گفت مطلب و دم عمره این مسلمان به غیر حق لیه عمره قدمه سوامی شخص کسی که میره مطالبه میکنه خون یک شخصی دنبال خونش میره در صحیح که ربطی به اون نداره یعنی کسا کار اون شخص نیست تا جایی که خونش ریخته میشه یعنی شخص میره دنبال یک چیزی که حقش نیست چیزی که حقیقتی نیست داره دنبالش یعنی شما اگر رفتی دزدی کردید در اون دزدی کشتیش جدید دیگه اصلا من منقطع الدین مالگه و ارضه با و شهید کسی که برای مال گفت برای مالش مال حلالش نه برای مال دیگران در دزدی کشه شد این دیگه جهنمیه این اون شهادت فرم میکنه اینجا هم فرم میکنه اینجا هم اینطور اینجا وظیفش نبود که برای دنبال قاتلان مثلا اون شخص وظیفش نبوده شخص برای خودش قوم و قبیله و عشیره ای داره این شخص چون بنا حق رفته خداوند بغزش داره خداوند بغزش داره بس این سه نفر کسانی هستند که خداوند بغزششون داره اب قبل الناس الاله ثلاثه ملحد في الحرم ومقتغ في الاسلام و السنه الظالم يطلب دم امرای مسلم بغیر حق لیورق دم یک مسئله ای هم هست که اینجا باید بش اشاره بکنیم در بحث همین حدیث و اونم بحث این جاهلیتی که الان ما بشاره کردیم در این حدیث که وجه استناد و استدلال معلف در اسلام در بحث. شما واجبه که در اسلام وارد بچید و جاهلیت رو ترگو کنید میخواد بغض، استدلال به بغض خداوند به جاهلیت میخواد اسمات بکنه چی؟ وجوب تمسک به سنت. راه روش جاهلیت گمراهی و آخرش جهنم و عذاب خداونده وقتی که اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله این جاهلیت را بیان میکنه وظیفه داعیه بونوا حسین اهل علم اوناته دومو دل علما مبارزه, علم. مبارزة با این جاهلیت با علم مبارزهت با باید با این جهاد مبارزه بکنید کنتم خیره امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و عن المنکر بهسترین امتی در صورتی که چی چون امر به معروف و از منکر میکنن یا در صورتی که اول از منکر بگن انبغي لئ الامه كنتم خير امه اجرجك الناس تامرون بالمعروف يدرج ديخذون باسباب الامر ولكنكم امه تدعون الى الخير بالمعروف وينهون عن المنكر وظيفه ما مبارزه هي بس جهاله كل هذه سبل ادعو الى على بصيره في بصائر بعلم وهذا شعري بخاطرها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من و ولا من خالفهم تو آخر حدیث همچنان گروه از umat بر حق ظاهرا بر اون جاهلیت ظاهرا جاهلیت را سرکوب میکنند همچنان نگاه به مخالفین خودشون نمی کنند نگاه اونهایی که پش بهش و میدان نمی کنند حق را میگن و نه را از بین میبرن یا با دندان و زبان و یا با دست و پنجه و شمشیر یا با حجت و بیان و علم یا با زور و بازو این دو تا وسیله است یا حجت و بیان علم مبارزه با اون مبارزه بکنید رد بر مخالفه این اهل سنت کسانی که قرآن را محرف میدونن قرآن را ناقص میدونن این وظیفه هست باید مبارزه بکنیم با این جهل و جاهلیت اون به ها و انحراف فکری و اعتقادی و سلوکی و رفتاری که در باید مبارزه بشه و از ویجگاه امه همچنان هست و اهل علم همچنان هم می‌نویسن و نوشتن حجت ها و ادله ها و بیان ها اومده و امام احمدی نوشته رد علی جهمیه رد بر جهمیه و کسانی که من گفتم خدا سخن نگفته دارمیام کتابی نشه رد علی جهمیه لا لکایت ایران ولن شود کتابی نشه اصول اعتقادات اهل السنه ابن خزیمی کتاب توحید رو نوشته امام کراجی ابو احمد کراجی کتاب نکات در قران رو مینویسه و میاد بعد از اول تا رد بر اشعریه و معتزله و میده رد بر عقلانیات میده اونایی که خودشون رو ملزم به سنت نمیدونن کتاب از علمای تراج میاد در دفاع از اعتقاد اهل سنت این کتاب چادردی را مینیزه این چیه مبارزه با جاهلیت با علم و حجت دوم مبارزه با جاهلیت با زور و بازو و زبان از قدرت خود متوجهی که میتونی وسایل تلفن موبایل کامپیوتر نمیدونم مقال نوشتن همه اینا وسایل شمشی هم یک وسیله هست با لغو با شروطش با ضوابطش مثلا در بحث جهاد اینطوری نیست که مثلا من برم به کوه بگم من میخوام جهاد بکنم نه مثلا شرط بده باشه خداوند امام باشه خوشا سرش بجنگی الامام و جنه سجن یسجن و یقاتل من وراء امام سپره پشت امام تا امام نباشه تو نمی‌تونی جهاد بکنی شروط و جواب داشته اگر تو رفتی راهزنی کردی و رفتی عملی عملیات تروریستی یا عملیات انتحاری و غیره انجام دادی اون عملی که جاهلیت انجام میدادن تو از اسلام فاصله گرفتی و داری فهم جاهلیت را در اسلام تطویق می دید. نها مثلا ما گفتیم جاهلیت امری که خلاف شریعت باشه. مثلا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در مکتب 30 سال. مسلمان ها زیاد بودن می اومدن. مسلمان می شدن. چرا یکی از اون مسلمانه غیور که غیرتشون از من و شما بیشتر بود کشته می شدن زد را چکنجه می دیدن. چرا یکی از اونها نیمد ابو جهر را ترور بکنه یا ابو را ترور بکنه؟ وقتی که انصار اومدن در منا در حج با رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شدن چهی رسول الله الان ما جمع شدیم تعدادمون زیاده اش شمشیرا به دست ماست اونا احرام برسن اصلا ندارن میریزیم و سنادی به قریش سران قریش نابود میگفت نه میشینی سر جاش الان وقتش نیست ما اهل خیانت و غد نیستی از گوش به کسی شمشیریم میزنی گفت که شمشیرا تو سر جاش بذارید که شیطان ندا میزنه که محمد و اصحابش میخوان شما رو بکشن و همینطوره صبح که وا شدن دیدن که شیطان داد میزنه که محمد و اصحابش جمع شدن که میخوان شما را بکوشن دین ما دین غد نیست غد از جاهلیت دین ما دین خیانت نیست از جاهلیت ما خائن نیستیم خیانت نمی کنیم برخلاف اون چیزی که مشرکین و کفار میگن ما هیچ وقت غد نمی کنیم و امته خفنا من قوم خيانه الفم بذلهم على خیانت و علائم خیانت دینی از كفار ابراسكا ده خيانتشون اونجا است که شما هم پیمانو بشتنین اگر پیمان شکستن پیمان شکنی گره ولی ما پیمان شکانیست قال وفي الصحيح ان ابيذ رضي الله عنه قال يا معشرة القراء استقيموا فين استقمتم فقد سبقتم سدقا بعيدا فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا اشار بقراءه اهل قران اهل علم استقامات بر دین دین پیشرفت میکنه فقط سبقتم سبقا به عیده یک پیشرفیه برای امت اسلام و برای خودشون اون اشخاصی که عامل به قرآنشون بودن خدا ایجاد میکنه یرفع الله الذین آمن و منکم الذین اوت العلم رفحت خدا میده اوت العلم درجات درج بلاشون میبره هم نفذ مردم عزیز میشن هم پیش خدا عزیز میشن بلی مادامی که عامل به قرآنشون ولی قرآن رو حفظ کرد ولی عامل به قرآنش نشود این منزلتش میاد پایین اگر عمل نکرد. خصوصا اگر این قاره دنبال دنیا شد شرق و غرب رو گرفت و گرف قرآنش عمل نکرد ره رو به راه خدا نبود سراط مستقیم رو نگرف رفت دنبال فرقه ها و نحله ها و گروه ها و دسته ها که اینجا اشاره بهش میکنه فا این اخفت هم یمینن و شمالن رفتید راست رفتی یعنی از راه صراط مستقیم خارج شدید فقط ظلمات ضلال بعیده گمراه میشید و این گمراهی شما رو به جای دور میرسونه این تحذیر هشدار بعد این که انسان استقامت بر روی دین محمد ابن واضح كان يدخل المسجد فيقف على الحلقه ويقول فذكر منظور اشنجا حذیفه حسنی امام محمد واضح یعنی وارد میشد مسكينين حرف الهرميزه مثلا نيومد مي يساد ميقول يا مشرف الله قر راسلك الطريق اي قر راه الراس را بيجي لي فلا ان لقد سبقتم سرقا بعيدتها من بحث رواياتك قمت ان بحثه ضعيف ميجي تمكين يجيني حرف عبد الله بن مسعود ميقين. وقال انبانا سفيان بن عيين المجالد عن الشاعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا تعامل الا والذي بعده اشق منها سال نیست مگر که سال بعدش شر شرتر از سال قبلیشه لا اقول عام امطر من عام انیگم که بارندگی امسال بیشتر از سال بعد ولا عام اقصى من عامنا بخش سال بعد خوشتر از این سال یا سال بعد سال بعدش ولا امینون خیر من امیرش بهتر از امیر بعدیت لكن ذهاب علماء و خياركم بهترین شما علما شما میرن صحابه بودن دیگه صحابه رفت در زمان... در زمان رسول الله, الله و تابعین زماني... زمان عمر بن عبد الجلیل، زمان قتره همین تابعین میگفتن زمان معاویه بهتر از زمان عمر بن عبد الجلیل، با وجود که فتوحات اسلامی در زمان عمر بن عبد الجلیل بیشتر بود. چرا؟ چون صحابه در زمان معاویه رضی بیشتر بودند. لكن ذهاب علماء و خيارهم و ثم يحدث يقيسون الامور بارائهم فيهدم الاسلام و يتلف. سفاسکتوانمیان با رأی خودشون، نظر خودشون، خودشون، فکر خودشون، میان هزاران نظر در دین در مورد ذات مواصفات خدا، قضا و قدر خدا، توحید خدا اظهار نظر میکنن با اون نظریات خودشون و نابود میکنن. اسلامو خرد میکنن. یعلم یعنی خرد میشه اسلام، طلافی میشه، اسلام از بین میره، نابود میشه. با چی؟ با اون نووری فکری، اون نووری رفتاری و اون بدعت هایی که در دین میشه. جوی امام حسن بصری هم بشاری میتونه میگه که در بحث قررا میگه یا ملح الار لا تفسد بقرامدهم حينما تبدا حينما دنیا یکسانی که نمت دنیا هزي. فاسد نشید چون اگر نماد فاسد شد بوشتان فاسد میشه اگر قرآ و علما فاسد شدن اهل دنیا شدن اگر منحرف شدن در سفات و شبهات افتاده دیگه مردم دیگه راههای گمراهی بهشون باز میشه مردم دیگه مجرع... مرجعیتی ندارن چون رسول الله صلی الله علیه و سلام ان الله لا ينتزع هذا الا إنما قبل انما ينتزع قبض الا انما يتزع العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وضلو مردون خطب خط من طرف جهال وان علماء سوء علماء يكه بدون دليل حرف مزداد سبب مشان انهم غمروا سبحانك اللهم بحمدك صلى الله محمد وعلى ال محمد